و آده طیبین طاهرین از معصومین و معصود دائمه و علا عزای اللهم افرنا جمعی المشهرین و رحمنا و رحمتی آخو بس در بزنی تحقق استثنال جمل متعدده بود که از قدیم از مباحثی که از قدیم مطرح شده و هم در فر آثار داره آثار مدینی ایسا همه همه ها نیست آثار شما آثار داره. و هم در اصول و مستی که به اقوان وانه انشاءالا به اقوان میرسیم اقوان نگاه میکنیم در این مسئله به افتثنائی فوقها و اصولی این که عادتاً توی این مسائل ورود دارن حتی نقلی هم وارد شدن به مناسبت اضاعت استثنائی و دلالت اضاعتا مخصوصاً چون به دنبان متعلق هستند که این عداد الا متعلق به سه فعله بیه و متکلمین اهل سنت هم به اعتبار این که اینها در مسائل اصولی دخالت داشتند که این مسئله وارد شدن یعنی این مسئله هم در متکلمین در اون نظر دادن هم فقه ها و هم اصولین و هم ادبا و نحات خصوص نحات از ادبا در اون نظر دادن و حالا این طبعا از دو تصادفات علمی هم. صاحب معالم مگر ده نباره باشه این مسئله رو که متعرض شده با عنوان مقدمه متعرض معنی حرفی شده صحبا در معالم معنی خرقی رو توی این واقع رو در این کتاب های ما تو مقدمات علم اصول مقدمه هی چارم معنای حرفی میاد، اما در کفار معالم فرقی بحث تک به استثناء این جمله متعارضه به این مناسبت متعارضه معنای حرفی شده و مناسبتش هم اینه که آیا لذت موزون موضوعی در خروف عمی یا خاص موزون داره؟ اگه محتوایی خاصه مثلا به آخری اگر عامه به همه بر این، یعنی خاصن این مسئله رو از این نکته به اصطلاح که برگشتش به این نوع تغییر لغوی حل بکنن که اگر ما نگاه به فرمان چه محاضرات استاد چه خود کتاب کفایه کتابی که میگه فرق نمی کنه دهی یا غرض آم باشه یا خاص باشه این جواب از معالمه این جواب از معالمه که اون مسئله اصلا رفتی به اینجا نداره حالا مخواد خاص باشی یا آم باشی مثل خود صاحب هم زرد رو و هم موظونه رو برای که مستعملوشی و فیر رو هم در حروف عام میذونه اونجا هم توضیح دادن استدلالی شلون در حقیقت مستعملوشی یعنی چه شو مستعملوشی هم که عام میذونه که خب به طریق اولام و موظونه رو هم عام فرض شاد و بعد بحث ازش اون موقعی که زرد زیاد کرد که ما خان این مساله از قدیم حتی نحوی ها حتی فیماورد سعی کرده اند از آثار تحلیل معنای حرفی حقیقت معنای حرفی چیه یکی از آثارش تو این مسئله ظاهر میشه که ما موضوع الله را آن بزنیم یا خاص بزنیم، این تأثیر داره, داره در این که به جمله اخیر برگرده یا به مجموع جمله، به کل جمل برگرده لیکن حقیقه این است که تأثیر نداره کمروزی برمیز رفتی اون مسئله علاقی که بماکان این مسئله را از که شده از این محرف شده که حدود شیش تا اصاف حکم جزائی در قرآن تقریب به همه که همه فسامون که در قرآن دارد است. هست از یک آیه قرآن داره که والله از من نسائقا فهم سفه این ظاهرش در همان مورد چیز در مورد زناست و گفته شده و مورد هست اصطلاح موزه ما همجین طرح های زنده اصطلاح این حکمش اینه که در خانه نه یفت بذارم تا بگیرم یا یعکی الله و الله همه سلیده خدای برایی رو حالا این بحث مفصلی از بین مفصلی نفعه های این آیه نصف شده نشده من دیگه باز اون بحثی بشم چون تودانیز و از بحث ما خواهده یا آیه هم بردش شده و لدان یعکیان ها من فاعوذوا بما هي اشیاءها منكم بسيره و ذكره آمده گفت این مراد حمل لواط چون لواط در قرآن کریم به معنای حد ذکر نشده سابقا هم یک قصه‌ای که متعدد شد فردی هم معترض این آیه ناظر به لواط الزام یا که امین کند علایم واقعت از نظر این دو آیه که در عقود عقیدهی در شرط ناطق و منسوخ مراد چی با نظر از این دعایی مبارسه چهار مورد از حدود رو ما داریم و در این آیه دوم ولدان یکیان ها من که که امتابا داره اینجا هم توبه داری توش این یکی هم چون از که خدا آیی نیست من خیلی واضح آیه نمیشم اما چهار تا آیه دیگه ما داریم که یکیش آیه محاربه اینما جزا آلدینه یا خارمون الله علیه و از آن فل علیه بعد از اینکه احکام شنتات و حکم بیان میشه حکم دیگری نداره که حکم با باشه بعد از تابو من قبل انصاری رو علیه حکم دستور خب فتوا بر این بوده که اگر قبل از اینکه حکومت اونها رو بگیره خودشون توبه کردن برگشتن حد برشون جاری نمیشه یا حکومت اونها رو گرفت حد برشون جاری میشه مخسیب نیست یکیش اینه این احتمال داره تعدد جمله باشه اما خب احتمال داره نباشه از وارد بسایی فرقی نمی کنم یکیش هم آیه قضیسه آیه قضیسه اینم هم شده سرقت هم ذکر شده زنا هم ذکر شده این مجموعه هست شهاره دو تا از احکام جدایی دیگه هم دیگه و آن ذکر شده کفاره یمین است و کفاره زهان این دوتا کفاره هم آمده وست کفاره سیده هم آمده در حال احرام اون هم ذکر شده این مدلکه میتونید ای حالت سید و حیوان و این هاست تیبیه تحمیم نداره این شیش تا منشه به اصطلاح هم دیشای بعدی اسلامی شده یعنی مواردی هم که نبوده سعی کردن برای یکی از این تا به اصطلاح تکبیر بکنن مثلا فرسان راجعه پیغمبر حالت هم نهر شده که چون از ازها در قرآن مرتبه ترکید داره سیغمبر در باره کپاری افضار اندی که یا رو باشه یا ستین سین باشه یا به اصطلاح یا سوم شهر و ساقین این تو کپاری خوب تو قرآن آمده همون مرتبه اما در سنت به من بردم و برمعروف مخیرند اگه بیا از اصل سنن را بشنو باشین قائلن حفاره احری هم متمرکه از باب اینکه اصل این مطلب در سنت آمده اما چون ریشی او در قرآن بوده به اون خصوصیاتش رو قرآن وارد برگردیم ارجاع به قرآن دادن. درسته؟ پس اون که دیو از اصل 6 تا در قرآن هست. دو تاش حفاراته، 4 تاش هم اصطلاحاً حفره اون شکل بیشتر به ما نحن نفید میخوره البته در حد سرقت هم داریم زمانه داریم در حد سرقت داریم در حد قرد اونی که از همش بیشتر مهمه و الذین یعنون از مؤمنات المحسنا سملم یعنی توبه از برد بر بر بر شهدات فجدون سمانین جلده و الاسه هم و لهم شعار و هم و فاسقون الا الذین طابون من بعد از عالیک دارم درکشان یا من بعد زول مزول من یا از یا از زول مزول تو زهنم داره آره از. همه لذیذها این بس و تعب است سنارو مثالش این بوده من مزه کشیدم ولی میارم ندارم کردیم از بایدش. که فردا برای مثال دیگه تا کیم بکنم فردا این آیه رو بست داده شده این آیه لیکن رو کنه. بکنه البته از کرم راجع به آیه بوده در خصوص این آیه ظاهرش این توره. حالا از کرم عبارات از سال ما هم با دماشه جوره یعنی بعض رواییات اما فتاها جور گیلی ظاهرش این بوده که اینا قائل بودن یا این الا الذینه تابو فقط بر میگرده به اخیر که هر سر با همین که رو جمع از اوز یعنی اولایت همون فاسقون یا بر میگرده به اخیر و قبل اخیر یعنی تقریبا شده اتفاقی کردن که توبه حد رو بر نمیگاه اون حکم اول فجل دوم ثمانه جلده این با توبه برداشته نمیشه اونی که با توبه برداشته میشه دو دوتاست یکی اولاه که اونو اگر توبه کردیه فاسق نیست یکی هم ولا تقبلون هم شهادتاً اولا این بحث الان در فکر هم مقبل شده ابو حدیث اعتقادش این بود که اگر کسی قرض کرد توبه هم کرد شهاده نشیج را قبول نمیشه درسته اون فکرهای فکر مقناش این شد که این اللذین و به خصوص اخیر برمیگرده یا ما قبل اخیر را هم شامل میشه یا به تحبیر آن دیگه کل جمعی جملات سابقه هم شامل پس معنیم شد که این بحث یک بیشه قرآنی داره البته این رو باید ما قبول بکنیم که مورد این بحث در فقه زیاد نیست اما هست دقیقی از این مورد قرآنی در حتی ما هم داریم حالا در زیره همی این واقعا یه چیز عجیبیه ما آمدیم این حد قدر خواه رو باید روایت حد رو کنم نقیل یا اصنات نیست نقیل مصدر نیست اما مشکلشی شد که خود اون روایت خیلی وضعی روز اون مثل این آیت خوده خیلی عجیبشینه که خود اون روایت هم این هم باید که فرمونی فرمونی که فرمونی که چرایت افرام دارم بنا ما هستی الان اول هر بحث نکرد. اینا میگه یعنی واقعا اون اونجا همین که یجلل ولا تو بر تو یعنی یک روایت زیاد تفسیر علوی ابراهیم اومده. صاحبنا بود امروز بیان مختصر بود. اونجا هم متاسفانه اون روایت و بل... اونجا اما این ارزم بخواستم این مثال دیگه هم اختصاص به چیز نداره اختصاص به این آیه نداره حدیثیت که در کتب اهل سنت در صحاق شماسی صحیح مسلم وارد شده اینطوره: لا یعن من الرجلو الرجلو پی سلطانه اگر جای همیر بود پادشایی بود پاس شاه سلطانه در امامت جماعت مقدم لا یعنمن الرجلو الرجلو فی سلطانه ولا یقعد و فی بیتی علا تکرامته الا به ازنه الا به ازنه دوتا آمده یکی بعد از لا یعنمن آمده یکی ولا یقعد و فی بیتی این الا به ازنه و لگه اشتراف هم که اگر خود سلطان یا امیر داد این حکم برداشته میشه یا نه در خیلق مثال آیه این مثال روایت هم در مسادر اهل سنت هست لا یه اومن رجلوه رجل فی سلطانه ولا یه و فی بیتی یه علا تکرمته الا به ازنه که این الا به این لا یه قد رو میداره خونش نشینه ایلا به اجازه او یا از هم برمی داره برمیداره امامت نهانه وقتی در خانه در جایی هست سلطانی هست امیری هست او به امامت اولاست این الا به ازنه به همه که که ماکان این روشن بشه که غلطا مثالش منحصه به آیه نیست لکن مثال زیاد هم نهده به غلطا این راجه به طرف مسئله و الله وقتی که بقیه خصوصیات گفته میشه. البته اصخاب ما سعی کردن غالبا تبیر مصارف یا بگم در اخیر برمیرده یا خصوص به مجموعه اجمل یا کلام مجمل به قول و وقتی که غالب سر گفت بشن که کلام اجمال پیدا میکنه در اصول متأخر ما یه مقدار به اصطلاح تفریع بهتری آمده در اصول متأخر ما دیگه من میخوام تمام رو اون تطبیقات اون عرق بکنم طول دیگه چون بحثم خیلی کارواز زیادی در چه نداره چون مواردش محدودیت داره لذا من فقط به مقدار اون مقداری که, که مرحوم استاد معنای خودشون فرمودن دارم میکنم البته باز هم اینجا این نسخه ما یعنی نسخه چاپ نژاد که بله ابزرو کردم باز هم خرابی داره البته اگر هاین این یک صفحهی رو که اگر این چاپ جهی بخون چاپ شده داشته باشن محبت بکنن که ما خیلی خوشحال میشیم از در این کتاب ترخب استثناء جلد پنج محاضرات چاپ نجف صفحه 304 به بعده یعنی سال صفحه 309 و 305ش اشتباه چاپ شده حالا این همه این از این کتاب من خیلید جایی بیگه هم نشد یک تحتیل از اشتباه بود جابجا جا شده اما آدم میتونه درستش رو این رو الان جایی هم چاپ نشده نبید وقت کردیم بعد بیدم من بیدم باید بله این داره این چاپ برد نه دیگه یالو فایده ندارم چنه نمیخوام بکنم چنه نمیخوام ولی اگه زحمت نشد این تحتیل بر من اک به جزوری از کجور مثلا میدونم فیقونو معارضه یه ما دماغ... نه میگونم فرادم داشت نه اون از کجور لا ما اضافهانه به اطلاع و مقدماته حکمه لا ما اضافه از اینجور فرادمو از رجوع از اینجور ندارم از, از اینجا حضر شده تا اینجا و از ثانی تا اینجا حضر از این سرخه ای 305 دقیقه میکنم از این سرخه ای 305 این که من دارم این صفحه 205 اشتباه شماره 305 روز کرده جاشم معین کرد تو همین چاپ کتاب صفحه 205 اشتقرار شده اشتباه و نداره این صفحه 305 نداره این چاپ نگرد این چافه, این چافه من دارم حسولاً صفحه 305 نداره این نسخه صحیحه این چاپ جدیدی که شده این صحیحه این درست خب بعد ایشان اول آیه خوی کلام مرمون شفاید نمیتون بدن رد, رد که بدن ایشان رو تحلیلی میدن بعد بدونی که رد روشنی بکنن یعنی میخوان بگم خودشون تحلیل بدن که دیگه خود به خود برکشن ایشان از راه دیگری مرمون استاد و خیلی ایشان زرگان قبلیش و من ها از راه دیگری وارد شدن یعنی قیل از اینکه فقط این آمدن این حساب کردن که موارد تعدد استثناء مختلفه چون گاهی وقت این تعدد به خصوص موضوع گاهی وقت به خصوص محمول گاهی وقت هم به تعدد هر دوست مثلا بله اگر خصوص به اصطلاح موضوع باشه مثل که بگیم زیدون قائمون و انبان قائمون مثلا به تعددی که ایشون نمیشتم و سانی مثل زیدان آدرون و زیگان متکلمون بعد ایشون سه صورت رو این جهت آوردن حالا این صورت سلاسه ای که ایتون نکته خاصی نداره میخوام خدای برای دیگه بکنیم و همین قطعه شما مراجعه کنیم سهله برشون اما اگر به ترداد به اصطلاح موضوع باشه که <تصفيق> اغداله هم به تحبیل ایشان هم در اغداله هم از اصطلاح منطقی است که اینجا شدیه مونه که اغداله هم تکرار نشده اغداله هم درش یکیه مراد از اغداله هم در اصطلاح اصولیها، ها نیست که متزمن و بکمه هست کردن مثلا اگه شما به تحبیلشون اکثر علما، این اکرب رو آین اصولیه ها اغداله هم میگن علماء هم اغدال اصطلاحا حتما گفت که هم اصطلاحی هم تلفظش عقد باغه عقد هم البته اون طرف چون ما مشایخ این اولونی دیگه را هم تلفظی عقد الحم می‌کنه همین چون اگر نتکرر فيها عقد هم كما اضافه له اکثر علما اگر این تحلیل دقیق ترین عبارت این است که ما بگیم اصلا یک ماده داره که اکرام باشه یک هیئت داره که مفادش رو کمی پس ما اینطور می‌گیم نظریه که مفاضله شو این هیئت این وجوب تعلق گرفته به اکرام. پس از اکرام بهتر است قدیری که متعلل از, از وجوب به خود از اکرام به متعلل. و یک علما داریم، اکثر علما از علما هم تعبیر کنیم متعلق و متعلل یعنی اکرام به اینها. حالا آیان غالبا از اعلی علما تعبیر به موضوع میکنن. از اکرام تعبیر به هم الهم میکنن. یکیه مراد یکی حالای کمی اسطلاحاتی اگر اینجور بود اکرم الفقه ها علماء ول اشراف و ساده اللف و سا منهم، بله یا مثلا اکرم الفقه ها ول اصولیین ول متکلمین الا منکان فاسقا من هم یعنی به عبارت دیگر در حقیقت حکم یکیه به بکرگیشون احوال حد حکم وجود اکرام اما این وجوب اکرام به سه موضوع متعدد متعلق شده اکرام العلماء و سادر ولی و ولی و ولی فقاها الالفصا میگن چون حکم یکی موضوع متعدد شده این قرنه است برای این استثناء به لحاظ همه حکمه استثناء به لحاظ حکم اگر استثناء به لحاظ حکم شد پس این استثناء به همه میخوره این ادعای ایشون ایشون, ایشون که ایشون که فضاهه بل لا شبه نه اینجور نیست که دارشون حالا فرمونه بل لا شبه فی رجوع الاستثناء الالجمی حیث و ان سبوت الو لهم جمعه ان قرین از این رو من یک توضیحی دیروز ارز کردم این عرفی که ایشون فرمودن اگر مراد عرف عام باشه یعنی اون عرفی که عوام می‌فهمند ممکن است مثلا ابتداءاً بگویند که این عرف عرف خاصه عرف عام نیست این بعد عرف قانونی مراد باشه نه عرف عام عرفی که در قوانین و در این عرف خاص با تامل و تدبر پیدا می‌شه نه اون معنای ابتکاری شبه نه عرفه هست عرفه قانونی دیگه مگه این که رواست حجت ندونیم یعنی با آنها در این حجت هجت با امام اما امام حکم الاقی برن کنم اونا هم ظاهرش کچه بازری بودن الا اگر واقعا معلوم بشه که از نقلش بفهمیم که این خیلی مطلع نبوده اعتماد نمی‌کنه. خبرش خیلی حجت نمی یعنی اگر واقع بش واضح بشه که محمد ابن موسیم فروش بوده، اما واضحه بشه واقعا اقلش اقل یکی موسیم خورما فروش بحث احلیم. بحث احلیم دیگه نه اگر میخوایم حدیث رو باش معامله محن قانونی بکنیم باید قانونی باشه نمیشه درست شغلش خورما فروش بوده اما بلا اشحال فقیهه اصلا در شاگردش دارن در حلال ابن ردین تفرق حلال ابن موسیم این بلا اشحاله نمیشه نه اگر مراد این نقل بیرین معنی که شما میفهمیم که ازش لحظ متن قانونی بگنه میکنه در این لحظی نمیشه لوبی میشه ما از که از نکات اختلاق همینه یعنی اون چیزی که الان ما در حجیت خبر در عرف داریم یک چیزه حجیت خبر در عرف قانونی چیزی دیگری. در عرف برز یک چیزی نمیشه خیلی ما قاکی الفاظ و مفردات و خصوصیات نمیشه. و سندیه هم بر ما نداره. ترکیب آثار نو رعایمان نه دیگه که اون حالا دینو. شن دلوام من تاکل می‌بینه که این نمیشه با همین هر کدوم کار کرد. پیش آسیب اورفی حلش نمیشه. اصولاً نکتهش همینه، نکته ی حدیه خبر اورفی. پس این شما مثلاً در بات ما که نوست می‌کنیم. نمی‌تونیم این درست مثلا فلان آقا نه خبر بی, بی نگرفت. نه مثل اون. این اون نیست. نه پیش اومده. این اون نیست. این این این که بحث وجده خبر شد شما خبر رو باش معامله متن قانون تو قرآن بکنید اهل قرآن حساب می‌کنه ولزا باعث به عموم شراحثاکردن به اظهار شناخت این بحثه این بحثی که شما خلاص مثلا میگم حالا یا اعتماد در خبر بیاتی بکنیم یا نه اعتماد در خبر مثلا فلان این نیست نه این حرفی نیست نه اینجور نگاه تصور بشه این سر این همه اختلاف فقها ها یعنی این در محبس و حجه خبر وارد این نکته در نظر دیگیم ریلا و لزام از کردیم ادهی از بغزادی ها احتمالا از قبیر مثل مرگون سهر مرتضا همین که فکر را داشت همین ریفان را و لزام بخشی که از محانی ادم حجه خبر این است که اون حکمی که در خبرت قبول میکنه اما خود خبر حجه نیست یعنی ارزش خبر ارزش ای یک ویل لبی میش این خیلی نقع ما عمده هم که در بحث وجهیت خبری که ما با خبر معامله در این للحظی بکنیم به عنوان یک متن بای با عنوان یک گوجه معقع نامره الله قطعا شما با خبرای یک رادیو روزنامه که این کار نمیکنیم. پس یک خبری که رستن روزنامه رسمی دولت یا روزنامه رسمی مجلس و سفا منتشر میکنه. یک جوب باش معام میکنه خبری که روزنامه های وقافی فر این صح‌ای است یعنی این مطلب رو ظکیاست صحبت این که در حجج اربعه همین یکی از انواع ترمیه یه دسته این تو مثلا 18 که حسن و حسین و تابعین و فلانین تو که در حرم دستوری ذی مولا نذا این ما این شیاز می‌خوام مثلا خبرهایی که امام صادق فرمود یا از پیغمبر نعل فرمود مثل حین این نیست اگه مثلا این باشه قرار حجت نمی‌کنه اصلا یکی از نکات نیمتونه جاتو کافی نشده حقیقت این بود که خبر به ما خبر هجت باشه و رضا این همه تخدیری می کردن در تحملش و در خصوصیاتش و کهی تحمل بکنه سن نشتغل باشه و لحظ به لحظ اصلا با دقیقه با ذرافت احکی که محسن زرد مثلا میگفت من اصلا نقد بکنم نقد نمیکنم اجازه بدی گوش میکرد یک روزی تو این خبر رو خیلی بعدها از وقتی نقای تصاحب بود اون بعد ها خیلی زحمت کشید انصافا ببین آسانی که شما تصاحب ندارید ها علیه حال حيث ان ثبوت الحكم الواحد لهم جميعا قرینتُن عرفا الا ان الجميع موضوع واحد فی مقام اللحظ و الجر حالا از کجا و امکان متعدد و تکرار لا یخلومن یعنی چون نقطه تمثیل او عدم وضع لحظه در یعنی ایشون میگن که اگر تکرار نشود همین اگر تکرار میکرد ممکن بود بگه مثلا بگه اکرم العلماء به مثال ول ساده و نحوین و اکرم نحوین الا الخصاء این آیه تو ما تو اگر اکرام رو تکرار میکرد احتمال میداریم که این الا به خصوص اون بریاده حالا که تکرار نکرده معنی موضوع یکیه چون موضوع یکی شد یعنی مثلا بکم چون یکی شد یک موضوع رو در نظر گرفته یعنی علما و اصادات و نهوین و سرحلل در نظر گرفته الا خوستاقشون خارج شده بله بعد دیگه بله و اضشون میگه و اما ضا ک رفی ها اقدال هم کم ضا غیل عاکمل اللا و اش و ااکم شیخ الل پسا فظاهرفی و جوول استثنا الخصوص این جمله اخیر. پس ایشان بعد یکبحثی فرماند دیگه اینا خیلی جنبه های مرها تحلیل اونطوری نداره و بیشتر جنبه هایث ممسادره مکب و خداه مرراتیکن. و اما در صورت دوم، که تعدد قضیه به تعدد محمول باشه همون موضوع یکی باشه مثلا میگه علماء یکی با اکرام همون علماء رو اکرام بکن تغییرشون بکن پشترشون نماز بکن چی چی الا پسا میگن از اینجا موضوع رو یکی آورده چند تا حکم این شاهد از این استثناء به همون موضوع برمیگرد این موضوع یکی آورده دیگه اگر اعلم علما سند خلف و اول هم اینا رو خونه مهمان بکن. اصلا حقوق شرعی به اینا بده الا قصاهم علما تکرار نکنه همین که تکرار نکرد یک موضوع آورده و احکام متعدد این الا بر می‌گرده همون موضوع استثناء از همون موظعه. وقتی ایشان در اینجا این آیه رو آوردن معقول استاد قدس سرهنگسه ایشون گرم مثل قولیه تعالی ولدین یرمون المحسنه هست آیه که الان تعالی بحث که آیه قدر چون گره ولدین یرمون المحسنات که موضوع آمده بعد سملمیتو و عربع که شاعدا. یک فجدو هم سمانه نشده دو و تقدر الله هم شاهد بطن عبدا سه و هم همه الفاسقون الا لدین تاغو پس قایلتا این اله تابو باید به همه برگرده فضای رو جل استثناء اله البته من نمیدونم مرگومه استاد مثلا اینجا و منتظم میشن فقیه یا چون تو اصول بوده مثلا حواظ شون پر تو, تو اصولی شده فقیه اونی که در موانی سکنه این من خیلی حاله بغل معروف این حتما یعنی از علی اولان سالیان سالتان را باید که حال روزهم خارج نردم اصلا متوجه روشن بشه خود با خود یا اولان سالیان سالتان خود با خود روشن از خودم که اگر آن رخ داشتند در کتاب مبانی تکمیل منهج که در علم خودشونه ایشون منهج سالینی مردمها حکیم و کاهشی زده شک کرده چون منهج سالین وقتی شاهدات و خزاء اولویه دیات ندارد شیعه اضافه می‌دهد و آنان حکیم لطمه منهج است و بیشتر شاید جوابه رو قرارمون خیلی بحث این جواب رو ازم میجاره از گرفتن اضافه فرمودن و بعدم خودشون به قلم خودشون شهر دادن مبانی تقی بن حاجی شد نجف بود ایشون که در موانی تقی بن که تو بحث zina بحث دارن که آیا توبه مسلط حد هست یا ایشون در اونجا دارن یکی هم بحث قرض در بحث قصد هم ایشون عبادت جواهر رو وردند، این عبادت شرایع رو اوگردن از ایشان در اونجا ظاهر نمیشه که حد ثابت بشه اهل سنت هم ادعای اجماع کردن که حد ثابت نمیشه اون ده گفتن به اولی بر نمیگرده فجد دو هم جله یعنی حتی اگر صحبه کرده آدم خوبیان شد شلاغه رو باید بخورده این ح این کسی رو اتهام زنا در متوجه بود؟ اونی که توبه می‌تونه مستثن باشه، یکی لا تقبل لهام شاهد زن عدن، یکی آن اولاکوم شاهدشون قبول نکرون فاسر اما اصل الذین تابوا، این الذین تابو تو این دو تا، اما ایشون فقط فزاهه رجوع الاستثناء الالجمی. ایشون اینو فهمیدن چه؟ نمی‌گورن شاید مثلا نظریه در مثلا ما تصدی رویات حقوقی میکنیم اینجا قاعده و اخذ داره میکنه یا اینجا خوب بود ایشون میخوان الا در این آیه قرینه وجود داره که حکم ساقط میشه و هر حال این یک مشکل هست اینجا ما یک مشکل فنی داریم که استثناش هم نداره که عبارت جواهر هم هست و که هم هست اینجا هم یک مشکل داره که آیا با وجود اینکه به کل برگرده ما چه کار ایشون دیگه متعرض شدن در آیان خودشون دیگه مراجع کن چون دیگه هم که صورت سوم هم که حکمش مثل تعدده و بر... در صورت سوم و برمیگرده به جنگه اخیل چون تعدد موضوع و تعدد حکم پس بنابراین مرحوم و استاد قبلت الله نفسه خلاصش بکنیم کلام ایشون رو ارز کردیم در مباحث سابق هم هدف از بحث های اصولی اعتاق بحث به یک صورت کلی است این خودش یک بحثی داره که آیا ما می توانیم مطالبی رو به صورت کلی بگیم که صورت باشه ماده نداشته باشه خب منطق هر از توی داره داره بحثی هم داره اونها دامت هم منطقه هم خادم علومه چون ماده نداره به تمام علوم میخوره بحثی دارم بعد ها که اقصدان در اروپا منطقه عرصوی همچنکه بس اروپا نشد مرحوم مرحوم استرابادی سالا به اسم کچکی سفرده مرحوم محمد امین استرابادی مرحوم الله محمد امین استرابادی در اونجا هم در پنج قرن این کتاب نوشته نحصد و قرده ایه انصافا خوبی در این جهد با منطقه عرسویی داره یکی از اشخاصی که هست اینه که منطقه عرسویی باز از تاثیر ماده خالی نمونده حالا به لزوم ایده هم است از فلسفه اساسا معروف این زمان ما دیگه اسمش رو نمیبرن که یک جور ریاضی قرار بده این تا منطقه ریاضی واقعا خارج از به اصطلاح حیات ماده بشه مثلا فرض میش شکل اول که صغرا و کبرا و نتیجه داره به جایی همین مثال معروف علی آلم حادث علی و کل حادث, حادث متغیر مثلا بگیم الف مساویس با ب بمس و کل ب مساویس با ج پس الف مساویس با ج به جایی اون عالم و متغیر کنه و ما ده معینی که ذهن آدم مشبه میکنه کنه علی حادث هست نیست حادث متغیر هست نیست دور لازم میانه و چی به که تو اون مشاکل واقع نشی این رو به صورت رموز ریاضی داریم که قابل انطباق بر تمام موارد باشه. وقتی این صورت میشه علف مساوی با و هر به مساوی با ج پس الف مساوی با ج به شکل اول. ما در اصول اگر حالا برطرف وارد را بحث منطقی ما تو منطق هم بتوانیم کاری بکنیم که اون هم روشن نیست به انصافاً اشراط اساسی داره که علم خواهد بششن اما تو اصول اینطور نیست. این به هر حال ما این مشکل رو داریم. یعنی ما قبول دارن که اصول با اینکه علم آلیست، و که در ماده معین که فقه باشه. حالا منطق میگه تو ماده معین از همه علوم میخوره، اما اصول به هر حال اینطور نیست. این مشکلی است که ما در اصول داریم. و لذا اگر ما می‌خاریم یک تحلیل اصولی بکنیم، تحلیل و اصولی رو باید در حدی ارائه بدیم که خیلی متاثره به ماده نباشیم اگر میخوایی ما متاثره به ماده بشیم باید با واقعیات فقم متاثر بشیم مثلا ایتون سه قسم یا موضوع واحده یا حکم واحده این دیگه یا هر دو متاثردن خب ایتون سه مثلا میگه اکرام کن علما رو و, اصول... و اصولین و رو و نحوین رو و علمای فیزیک رو و علمای و الا الفساخ مگر فساخ خب یکی اکرام بکن موضوعش متفرده ایشون اومدن از این راه وارد شده یا موضوع واحده مثلا زیت که پسر اموی توست روز جمعه مهمونش بکن صد درهم هم به او بده مثلا یک غذای خیلی خوبم برایش بس 10 درهم از کتاب فلان بده مگر اینکه خدایگه تو مریض بشه فورش شده. حالا این مگه اینکه که فکر شده بیدن اخیبی خودمون جا بکنه از کام خود فقط یعنی در حقیقت آقای کویی میخوان از این راه این را اصولی بدهن درمشن چون تره اصولی؟ اون تره اصولی یعنی به هر حال به ماده تأثیر پیدا کرد فقط تعقب استثنان نشد با ماده تأثیر اما اون ماده باز ماده در حق باید داشته باشه ایشون میگه شما اگر حکم واحد آوردی موضوع عوض کرد یه استثاب موضوع واحد ورددی چند تا حکن رو استثنا وردی این قاتل به همین میخوره. این باد به همه رو اون قرار اینی که اقام. اما اگر موضوع و ب تو شد مثلا چند ض رو روز جانهه دعوت کن.حت حسن رو بهش پنج کتاب بده تغییر کنن کار بکن مگر اگر اینکه خوش شده و م اگرگه پتون به تغییر میخورهچون عکها یعنی ایشون آمدن حل لکه باشن شد خلاصی حرف های خوبی به تحلیل اصولی ایشان یعنی ما در این ایشون یک صورتی دادن در استدلال، لیکن به هر حال مادر و خای نخالی کردن اون صورت به این صورت اون صورت رو اینه وحدت موضوع. یا به تحلیل اشون اقلال خیلی دنبال اصطلاح هست وحدت و و تعدد موضوع و حکم اگر وحضت حکم باشه و وحضت موضوع به جمعی برمید اگر تعدد البته در اصلا همی توضیح دیگه هم دادن که فرض که مثلا اگر موضوع متعدد شد حکم یکی بود اما حکم رو باز تقرار کرد اگر همین که تقرار کرد باز به اخری برمیده یک بقال نوزی یک تفسرهایی رو زده اما غیر از تفسره بنابراین یه حاره به طرق بحث اون شون که ایشون وازا حل مسئله اصولیه تعقب استناد جمل متعدد رو از این راه کردن من کناراً اکثرن همیشه تو مسئله از آن عادت کنید و فکری و تنمیث رو بکنید شون هست این بعدم داخل آوردن خلاص شبهته خط ایشان از کجا الله اعلا سر که بر ما در این مسائل پیدا نمیشه حالا ایشون که چه داره حکیمی که باشه موضوع متردد باشه، با اخیر بخواد که موسیقی خاز. گفت بگو بکن بخون، و حسن باهن سین و تقریب و, و جذاب، مگر این که فوسته، مگر این که جذاب فوسته، مگر این که همه فوسته، آیا احتمال داره؟ حالا قطع ایشان داره که به همه برگرده، خوب مثال دکارت حتما باید این اگر اخیر به همه برگرده، این یک مطلب، مطلبی دیگه این که این مطلبی که ایشون فرموده، خوب دکارت رو اضافه بر این جهتی که باید مثلا اصفات بشه و نکته های استظهاری عرفی دنبالش، عرف قانونی گنبالش یا اضافه بر او من از خدم بنام شد که ما اصول رو از فقه بگیریم ایشون اگر بنا بشه سه تا مورد مثال بزنه ما تو, ما تو فقه این نداشته باشیم خب چه داره <تصفيق> مثلا مورد اول اکنون علماء فلان و اکمار ها و سلح ها و فلان الا خوف یکی باشه یعنی اونی که در اینجا مهم مهمه فقط مجرد مثال نیست بحث این است که ما تطویقه فس اون مثال لایع من رجل و رجل و فی سلطانه این از سرد دوک موضوعه بله مثال ثبابیشان این ولد از یعنی محسنا که ایشون مثال دوم گرفتن بد نیست اما اونم بازید مشکلی داره یعنی اونم کاشتی ایشان یک تفسری می فرمودن متأسفانه تفسره نبر بودن و اون مشکلش اینه عده از اهل سنت استزهای کردن که در همون آیه فقط به اخیری می‌خوره، به اولایی که امول و عده ایم از علمای ما این استزها رو کردن خودش ببینید چه استزهایی کردن آیه به همه اما تو فکرها شما منعکس نیست حالا چرا نه نکته پنیده دقت بکنه چرا نه بحث اصولی تعقب استثنالیسکی نکته دیگه اون اهل سنت که گفته برمیگرده از افید میگه سیاق عوض شده اصلا اون میگه شرطش اینه اصلا این مثال از مورد ما خارجه چرا چون دو تا حکم به امر و نهیه فجل دو هم سمانی نجده ولا تقبلو لهم شاهاتا نبدن و اولایتو همون فاسقون این جمله اسمیه هست اونا جمله فعلیه بودن زجری و امری بعتیه بودن بغیر میکنیم چون سیاق جمله عوض شده هستن فجردو هم سمانی به جلگه ولا تقبلو لهم شاهاتا کاش این تفسیر رو مرموم اصداد خب این مثال رو بودن در شاقه لیکن اصلا مشتلی چیه؟ مشکل اینه که ما این بحثها رو بدون ماده نداریم یا به تعبیر دیگر بنده بدون مورد خیهی نداریم اگر این طور بود فجده دو هم سمانین جلده ولا تقبلوله خواه مشاهد دکت فرمودید و فستقو هم حکم به فسخ اینها بخواه تا اگر حد یه هر وایخی درست می شود اما اینجا مشکل اینه که سیاق کرام عوض شد سجده و تمننین جله ولا تقدملم شد البته خب در باب قواعد عمومی خلا کم می مثلا که در ایام جوان تدیس کردی اونجا داره که اصل جمله اصلی ور خیلی درست یا نه یه جمله انشایی ور خبریه این حالا یک مقدار نحوی ها از این جهت اینجا رو بررسی کردن است بهتر پس این این نکته ضرورت بحث روشن شد چون بحث مباحث اصولی یک مشکل اساسی داره و اون این که ماده درش موثره مثل منخب نید که خادمال قدوم باشه ازدهاشوی که ماده توش موثر نیست. اگر ماده درش موثر باشه یا به اصطلاح دیگر من موردی باید حساب بکنی همین مثالی که ایشون صورت دوم زدن این مشکل داره اون مشکلش اینه که اون جمله سوم، تعبیرن با دو تا جمله قبل گفتم که موضوع یکیه چیه عوض شده ولذا بعضیاشون گفتن چون تعبیرن عوض شده و اولائکام الفاز گفت الا الذين تابو به میخوره از بحث تموم شد وقت شد